فصل چهار حضرت زهرا سلام الله علیه ربایی ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه تبریک که قنچه پیمبر آمد امشب به جهان همسر حیدر آمد یومن قدم کوسر احمد تبریک تبریک دوباره روز مادر آمد آتش گرفتن در خانه حضرت زهرا سلام الله ها زبان حال در خانه بیبی بی. از کینه و بغز عدو آتش گرفته پیکر هم است داغ میخوا من شرم دارم مادرم آن بی‌حیا با هر لگد می‌خواست دل را بشکند می‌خواست من را بشکند وارد شود در آن حرم ای وای دیدم من چه ها می کرد آن مرد پلید سیلی بر آن مظلوم زد در پیش چشمان ترم. من سوختم پا تا سرم دیدم تمام فتنه را دیدم خمیده قد او بشکست هیدر در برم پایان نشد این شعله و خود را رسانده کربلا آتش گرفته خیمه و ذکر است سوخت معجرم آتش گرفته خیمه و ذکر است سوخت میجرم